خلا خلاه کودم بدان زمان که شود تیره روزگار پدر به زمان که شود تیره روزگار پدر سراب و هستو روشن شود به پیش نظر مرا به جان تو از دیر باز می دیدم که روز تجربه از یاد می بری یک سلاح مردمی از دست میگذاری باز به دل نماند هیچ زراد مردی از سر. مرا به دام عدو مانده ای به کام عدو بدون امید که رادین همز دست مگر نگفته بودم صدره که نان و نور مراگر از طریق بپیچم، شرنگ، باد و شرر، قانون منی در در حبس و بند خسم نیم که بند بکسلد از پای من بخواهم اگر به سای دستی بندم ز پای بکشاید به سای دستی برداردم کلون از در من از بلندی ایمان خیشتن مندم در این بلند که را بریزد پر چه درد اگر تو به خود میزنی به درد انگشت چه سجن اگر تو به خود میکنی به سجن مغر به یاد دیدی که مردم چالاک برابرند زعماق آب تیر درر به قصه نیز شنیدی که رفت و در ظلمات کنار چشمه جابید جوست اسکندر همین ترا نشنفتی که حق و جاه کسان نمی دهند کسان را به تخت و در بستر نسعد سلمانم من کنال بردارم که پستی آمد از این برکشیده با من بر چو گاه رفعتم از رفعتی نصیب نبود کنون چه مویم که به پستندر مرا حکایت پیرار و پار پنداری یاد رفته که با ما نه بود نه تر نه جخش با درخت باروری که یک بدن سال افتاده از سمر دیگر که سالیان دراز است این حکایت فقر است که تکرار می شود بکرر نفقر باش بگویمت چیست تا دانی و قیهمای درختی که می شکوفت بر دران و قاحت شورابه که از خجالت آب به تنگ بالی بر تن تنزنت آذر تو هم به پرده مایی پدر مگردان ما راه مکن نوای قریبانه سر به زیر و زبر چه توفتاده که میترسی ار گشایی چشم تو را مساید رؤیای پرتلعل و زر چه توفتاده که میترسی هر به خود جنبیز عرش شعله درافتی به فرش خاکستر به وحشتی که بیفتیز تخت چوبی خیش به خاطری زدت احجار کاغذی نبسر تو را که کسوت زرتار زر زرپرستی نیست کلاه خیش پرستی چه مینهی بر که پای برابست و کار خراب چه پیپ کندن در سیل بار این بندر تو که از معامله جز باد دست گیرت نیست حدیث باد فروشان چه می کنی باور. حکایتی عجب استین ای که چسان به تیغ کین فکندند به کوی و گذر چراغ علم ندیدی به هر کجا کشتند زدند آتش هر جا چراغ <تصفيق> علم ندیدی به هر کجا کشتند زدند آتش هر جا به نامه و دفتر زمین ز خون رفیقان من خذاب گرفت چون این به سردی در سرخی شفق منگر یکی به دفتر مشرق ببین پدر که نبشت به هر صحیف سرودی فتح تازه بشر بدان زمان که به گیلان به خاک و خون قلتند به پای مردی یاران من به زندان در مرد. بدان زمان که به گیلان به خاک و خون غلطند به پای مردی یاران من به زندان در مرا تو درس فرومای بودن آموزی که تو به نام به کام دشمن بر مرات و درس پرومای بودن آموزی که تو به نویسم به کام دشمن بر نجات تن را زنجیر روح خیش کنم زراستی به نشانم فریب رابرتر ز صبح تابان بر تابم ای به شام تیره رو در سفر سپارم سر قبای دیبه به مسکوک قلب بفروشم شرف سرانه دهم وانگهی خرم جل خر مرا به پند فرومایه جان خود مگزای که تفته ناید ماهن بدین حقی رازر تو راه راحت جانگیرو رو من مقام مساف تو جای امن و گیرو من طریق خطر